بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند به اندازه مهربان نهایت باره ای پایان چرا چیزی را که خداوند برای تو حلال گردانی در حرام می گردانی تا بدین وسیله خوشی همسرانت را بچویی و خداوند آمرزگار و مهربان است. ای مردم بیگمان خداوند برای شما کفاره را وسیله خلاصی سوگند شما قرار داد و خداوند کارساز شماست و او دانا و با حکمت است و چون پیامبر به بعضی از زنهای خود سخن را به راز گفت و آن زن سخن را به دیگری خبر داد و خداوند رسول خود را بر آن آگاه ساخت رسول قسمت از آن را گفت و از گفتن قسمت دیگر خودداری کرد چون پیامبر او را از افشای راز خبر داد آن زن گفت چی کسی تو را از این موضوع خبر داد پیامبر گفت خدای عالم و آگاه مرا خبر داد اگر حضبی شما با خدا تو بکنید این به شما حبتر است بگمان دلهای شما به حق مایل شده است و اگر یک ایگر را برزد او پشتیبانی کنید پس به گمان خداوند به ذات خود کارسازی اوست و نیز جبرائیل و مؤمنان صالح و بعد از آن فرشتگان پشتیبانند اگر پیامبر همه شما را طلاق کند شاید پروردگار او زنان بیتر از شما به او حواظ بدهد. همسران مسلمان، مؤمن، پرهیزگار، توبکار، خداپرست، شبزنددار، روزدار، بیوه و باکره ای مؤمنان خود را و خانواده های خود را از آتشی که هزوم آن آدمیان و سنگها اند نگه دارید آتشی که بر آن فرشتگان درشتخو و سختگیر مقررند خدا را هرگز در چیزی که به ایشان امر کرده نافرمانی نمی کنند و هرچی را به آن معمول شده ان، انجام می دهند ای کافران امروز عذر خواهی نکنید واقعا در برابر اعمال خود جزا داده می شوید ای مؤمنان سوی خدا توبه کنید توبه خیرخواهانه با احساس پشیمانی ایمانی تا باشد که پروردگار شما از شما گناهان شما را بزوداید و شما را به با باغستانهایی جای دهد که از زیر درختان آنها جویبارها جریان دارد روزی که خداوند پیامبر و کسانی را که با او ایمان آورده اند رسوان نمی کند نور ایشان در پیش رویشان و به جانب راست ایشان میتابد میگویند پروردگارا نور ما را برای ما کامل گردان و ما را بیاموز واکن که تو بر همه چیز توانایی ای پیانبر با کافران و منافقان جهاد کن و بر ایشان سخت بگیر و جایگاه ایشان دوزخ است چی بد جای بازگشت است دوزخ خداوند برای کافران زن نوح و زن لوت را مثال زد. ایشان در قید نکاح دو از بندگان صالح ما بودند، اما این دو زن در برابر شوهرانشان خیانت کردند. پس هیچ کدام از این دو پیغمبر چیزی از عذاب خدا را از ایشان دفع کردن نتوانستند. و به ایشان گفته شد با داخل شونندگان به آتش دوزخ داخل شوید. و خداوند برای مؤمنان زن فرعون را مثال زد هنگامی که گفت پروردگارا برای من نزد خود در بهشت خانه بساز و مرا از فرعون و عمل او نجات دی و مرا از قوم ظالم نجات دی و مریم دختر امران آنکه عورت خود را مسئون نگه داشت و ما از روح خود در او دمیدیم و او سخنان پروردگار خود و کتابهایش را تصدیق کرد و از فرمان برداران ما بود